رحمه الله می رمضی العالمین و صلوه الله و آله طیقین و خاهرین المعسومین ولن تو دای مجال و اعدای مجمعین و رحمه يا که یا از بود؟ تعرض اقبال علمای اسلام در طول تاریخ اجمالن شدیم چه کسانی که اصولاً به آیه نوه تمسک نکردن یا گفتند تمسکی به او ضعیف کنن به خاطر مفهوم شرط یا مفهوم برس چون بیروز مبانی مختلفی رو به نحوه فهر ازوار از کردیم موانیه کسانی که اصولا مفهوم رو کلن قبول ندارن فقط منطوق رو قبول میکنن تا کسانی که مفهوم شرط و وصف رو هر دو رو قبول میکنن و دیشون هر دو رو در موضوعی تطویق میدن و صحبت ها دیگه گلشتی احتیاج به تقرار ندارن از کردیم امده اشکار در ناهی مفهوم وصف این است که خود مفهوم رسم ثابت نیست مخصوصاً جایی که رسم معتمد بر موصوف نباشه که در ما اینطوره. حنفی این طوره وصف بر موصوف نیست اینجا اكم فاسقون اینجا رو مفهوم یرفتن. با مفهوم این به مفهوم لغوی ارزش مثلا طره با مفهوم لغوی این واجزه مفهوم رسم و اما حضورت اشکال آقای خویی این بود که امنیت رو با اشعار به امنیت رو میشه رو کرد که انحساب رو انحال مختلف از قدیم اشکال شد اما چه مطمئن شد مهمتای مشکلش این است که اینجا قضیلیه مسئول از داره بیان موطور چون که وقتی اینطراف فتره یعنی فتره یعنی فتره یعنی معامل خبر این نورت این جا که آقای فرسه هون این مثل اندوزه یا انتظار زیتون در همان فت این از اون میشه اینجا از یه مسوولت برای بیان و موضوع حالا از اشکالی که اصولا مفهوم شرط اون نیستون دیگر میکنیم پس اولی اشکال در اینجا اینه ما دیروز بعد از هایی که در مسئله شد از کردیم که چند نکته در این مسئله مورد بحث و توجه قرار می‌گیره که دیروز از کردم که مفهوم بحث یکی مفهوم شرط یکی این مسئله که اصولاً مسأله آیه و سیاه آیه درباره خبر است و اقسام خبر یا درباره فاسق است و بعدی از حالات فاسق این نکته سوم و نکته چهارم هم راجع به این بود که آیا حکم تعبودیست یا در مانه نفی حکمش حکم اغلاییست و نقطه پنجم شن نزول آیه مبالکه در بسیر به سلام شخصی که پیش برمی مصطلب و نزیر جنگی و بردار بشه شن نزول آیه چون بعضی ها با تمثقه بشن نزول آیه یا در استظهار از آیه اشکار کردن یا اصباب کردن دو ترفنده است. درباره این مطلبی نکته از وکلم که ما الان خب کتوبه زیادی داریم در کتوبه هرسی شو کتوبه مستقلی به نام به پرساله شدن نزول آیات که از همش معروفه همین کتاب الله دیگه نیش آوریو شکل چی موضوعی از نزولیه از نزولیه کتابی که معروفه را بررسی میشه. بالا از آن کتابشون معروفه که حرف که و ادعا بر شده که آیات مبارکه در مناسبت های مختلفی نازل می‌شود. البته این مسئله شعن نزول به که از خیلی مسائل بسیار مهمی شد که بین نزاهای عقایدی و کلامی بین خراب اسلامی مطرح می شد مثلا فرس می اینکه که این آنی که با آت زنکار با حق قبول در بسماخ فدک نازل شد فدک حدود نزدیک چه چیزی کمتر با خیبر فاصله داره جزوه شده خیبر نیست و چی صبر روشه خیبر که فت شد به دسته مسلمانه ها احالی فدک خودشون آمدن و تسلیم شدن و به اصطلاح در اختیار فیلم برگذاشتن قرار بر اینه که منم جو کار می‌کنم و مزد به حساب درآمد رو برای از درخواساله علی قرار میدم. مسئله مساله فدح واسه ذل قربا حقو مثلا لکسولهای زیادی از اهل سنت اشاره کردن که واسه ذل قربا حقو ول مسکین و ابن سبی در دو آیه در دو سوره در قرآن هست و هر دوم مال مکه است. مناسبت باشه ان نزول در مدینه نل خود سوره مبارکی حلعت ها گفته شده مکیس مناسب نیست با شعن نزول در مدینه به الا آخری این صحبت های احوائلی و کلامی هم در باب شعن نزول آیات وارد شد از اون, با... از اون طرف هم شواهدی در درست هست که انسان احساس میکنه که این آیات یک جا نازل شدن در ایده کسی که وارد شده باشند در حال وارد این بحث نشید مرضو به علوم برآن و تفسیره و تاریخ اسلامی این صافش من فکر میکنم این احتیاج به بحث خیلی خوبی داره و متاسفانه نشده هم روایاتی که در شن نزول وارد شده مقدار زیادی یعنی نوران در, در مسادر عملی آمده مثل کتاب تاریخ تبری و سیره و در کتاب سیره اتنین شام و ایرونیس ها و در اونجا آمده که فنظر قربوطالا که منظورش در تاریخ خود اگر این روایات به لحاظ سردی بررسی بشه و مجموعه روایات و شواهد تاریخی که راجع به قدوم و قرآن هست بررسی بشه به نظر این قسمت هنوز خیلی روشن نشده خیلی افهان داره حالا سرش چی بوده سرش انحراب دیگر ولایت بوده و بوده به حال انصافش این قسمت افهان داره مثلا در سوره بقره که ادعا می‌کنن در اول ورود مدینه مثلا بهشون لارم زال کتاب داره میگه این منوش کتابی مطرح بوده، نوشتاری مطرح بوده. این کی بخاطر که تیکی تیکی آیه وارد بشه این اونجا اون اونجا بده. خیلی دقیق به ذهن میاد با انسجام خود و قرآن نمی‌سازه با آیات اون نمی که با خیلی اشواهد تاریخی دیگه نمی‌سازه. اصلا همین آیه مبارکه که از آیات سوره و هجراته سوره و هجرات خوبیه سوره یه با این که زیاد آیه نداره بیشتر میخوره به جنبه های اخلاقی ولایت هم برزه کن برزه هم تو همینه حده از آیات اخلاقی لا ترفا و اصفات هم فقر سلطن نبی هم تو همین سوره مبارکه انسان احساس میکنه که سوره که حالتی یک نواختی داره این که مثلا یه آیه سال پنج یه آیهش مثلا خیلی بعید به ذهن میان خب. فوق <تصفيق> العاده بعید به ذهن میان انصافش این آیه مثلا بگیم یه وقت نازر شد و آیه یه وقتی که نازر شده خیلی بعید به ذهن میان ولذا الان فرض اینه که یعنی این فرض رو ما فیلن بران فرضیه فیلن مطرح میکنه یا باقید یا تئوری این نظریه بین بی باشه که اینها منسجم وارد شدن سوره خجراف با عنوان یک سوره واحده، و سوره منسجه میوارد شده تیکه،, تیکه،, تیکه نبوده آیا آیا باشه بله امکان داره که در قصه مثل قضبه مصطلح خصوصی این جبرئیل به پیغنبر نازل کرده باشه این بحث دیگه ممکن ممکنه در نزول های مکررهی که جبرئیل داشته با عنوان تطبیر بعضی از آیاتی رو که سابقاً جزوه قرآن موده دو مرتبه تطریقه هم. این نزول نزول تطریقیه نه نزول اصلی نه نزول تحسیسی تحسیس نیست توی قصه یه بس که مثلا برای مستلق اون شهر خبر داد چه بری رو گفت اینجا اکن فاطمان به توی بعد از جوابهایی هم که از استدلال با آیه داده شده این جواب هست که شاید شعن نوزول آیه شاید نقطه پنمی آیه اثبات فسر اون شخص باشه چون یه شخص و و مزخدفی اسمشان شده, شده مرمونم هست و هر حال این شاید مثلا این نوزول تطبیقی او باشه و الا ظاهره آیه مواره که روی خاصی ری میخوره یا یا لذین آمنون جا کنفاس خونده بره فتبین و انتوسی و قومم به جهالت فتوسف و الان ما فراتون نادمی و مراد از اصابه خورم خصوص کشتن هم نیست که در اینجا مثلا مراد باشه اصولن انسان ممکن است بر اساس اعتماد در که یک انسان فاسد نویه منشأ مشکلات برای دیگران درست بکنه این توصیب و قومن به جهالت لازم لازمه میست مثلا در اینجا به قصه جنگ بود و نزدگی بر جنگ تشریف ببرن این مثلا منجر میشد دخون روزی و, و کشت و کشتا نه به نظر من انتوصیب و قومن چون بعضی هم به همین توصیب و قومن تمثل کردن این توصیب و قومن در هر موردی به حساب خودش باشه چه داریده به جنگ و پشت و پشتار فراصل این شما اعتماد بکنید به یک فردی که ناسالحه فاسره در تزیگیف این شرطه مبایده رشالی و قدوم خب این هم صرف میکنن توصیب و قومن به جهاله به شما میگنید چرا به این شخص اعتماد کردیم که همون تو کنید برای یک مثلا دوال موزیا خاص یک رادیو خارجی یک گزارش یا یک, یک تلویزیون خارجی فیلم بخوسته از یک صحنه به شما میگن چرا ونی این اعتماد کردی خب این افراد لاوابالی هستند اینا دروغو ان اینا مثلا سوابق استعماری دارن سوابق زشت در این کشور داشتن خب دنبال اهداف خودشون یک فیلم جالب درست کردن خب چرا اعتماد این توصیف و من لازم نیست واقع جنگ باشه فکر نمیکنم احساس بچند باشه خبر در زندگی انسان تأثیرش حالت در مثل جنگ نیست یک تأثیر عمومی تری داره انتوسیق و من به جهارت فقط به هوا علامه فرق و نادمین عموم داره علایه حالا به ذهنم هم فعلا فرق بگذاریم که فکر نمی‌کنم آیه جداگانه نازل شده بعد در این سوره چون بعض روایت معیر این مطلب باشه اما بعضی از معیر این هست که سوره ها کامل نازل شده علایه حاله احساس ما اینه که سوره به نحر کامل نازل شده و داره سیاق سیاه و روش خاص خودشه بله ممکنه در بعض از مناسبات هم یک قسمت از آیه یا کل آیه رو جبعی تطبیقاً آورده باشن سعی هم هست که فنازل و قدرت حالا نه این این آیه خیلی ما الان این پنج نقطه اساسی در خدمت آیه گفته شد که وارد این بحثش. البته باید در نظر داشت ما وقتی می‌بینیم که در یک آیه واحد در طول پوچارده قرم مسلمان ها اختلاف شدیدی پیدا کردن و مراد از مسلمان ها امام نیشتن علما و خواست و متکلمین و اصولین و کقاها و با زحمت های زیاد و با شواهد علمی معذالک به یک نتیجه واحدی واضحی نرسیدن و کلام هنفاد زبور نمیشه خود همین مقدار تعدد اقوال و احتمالات و اینها خود این منشأ میشه که بگیم آیه دلالت بر حجیت میکنه اگر بخوایم بگیم دلالت بر حجیت میکنه بعدلوسیا و الاتی بر اوان اخباری ما این دلالت میشه زنی فوقش میشه اجلا ظنی در فلس بعد از تمام این حرفا و احتمالات و آرزیل رو به هم بریزی آخرش میشه که احتمال زنی را خوب دقت بکنید هدف از این آیه چی است که تناسبی بخواید فراموش نکنید هدف از تناسب اینه که ببینیم ما به زن عمل نکنیم اگه ما باشه به زن عمل کنیم قاعده انضباط باشیم خب معلومه که چه با نداره اگر خبر و مفید زن بود عمل میکنیم مثلا هدف از استدلال با آیه خوشایند شد مثلا هدف از این که ما ادله خاصه میاری می بگیم به زن مطلق عمل نمیکنید غیره اگر بنام شد به زن مطلق عمل معلوم این نظریهی که دید یاد یاد زخل سنت دارن به شیعه هم خب معروف از منون سالخوانی اینا معتقلن ما در فهم شریعت به زن برمیگردیم اعتقادشون اینه اصولا در احکام، اقاید، دین، اخلاق هرچی که معارف دینی ما در مجموعه معارف دینی به زن برمیگردیم رجوع ما بزن زن برمیدیم. خب اگر این خود بر راسته اگر ما قائل شدیم به حجیت مطلق زن یا با قول آقای اصولین ما زن انصلادی بده بد نیست استدلال, بد نیست استدلال با آیه بد نیست چون این مطلب به حکم عقلم هست چون شریعتی که نمیشه از بین بود اگر ما راه علم و علمی نبود باد به زن برگردیم بگیم در اینجا هم زن برای ما پیدا میشی که قول واحد بجهد خبرواز بود مثل زن در بقیه خصوصیت نداره کردیم. اگر بگیم به حد زهور رسیده یکی از نکات مهم در زهور چون زهور یک پدیده ایست در کلام کلام و لغت یک طبیعتی داره اجتماعی یعنی ارز کردیم در باب الفاظ معیار اساسی وقوع تفهیم و تفهمه من یک چیزی رو بگم میدونم من چی میخوام و میدونم شما هم همین رو از این لفظ میفهمید. خب دقت کنید. من میگم آب بیار، میفهمم آب یعنی چی، بیار یعنیشی، و میفهمم شما هم که طرف مقابل من این همین معنا رو میفهمید. هم تفهیم من هست، هم تفهوم من هست. شما هم در طرف مقابل همینطور. شما در طرف مقابل میفهمید که آب بیار یعنی مایع خاص، بیارم فعل معینیه درست شد؟ و شما هم بگید که این متکلم مرادش اینه هر در هست پس میعکوب دقیقه بودم ما در بحث حجت ظهور این نکته رو حرف کردید اساس در باب کلام انعقاد ظهوره اگر کلام به جهت منالجه ها امعقاد ظهور نشد اجمال پیدا کرد قطعا حجت نیست اینجا بحث نداره و این یک است که حالا شده عده از علماء ما یک کلماتی که زودشون ضعیفه تمثل کردن و که این مشکل نظر فنی مشکل حالا از وابه استرار و بیچارگی و دلیلی نبوده اون بحث دیگر است ما ارز کردیم توی مسئله اجماع تو مسئله استحسان کسانی که قائل شدن تو همین مسئله خبر واحد یه مشکل کلی در دنیای ما هست در دنیای علمای اسلام گاهی یک مطلب رو به اصطلاح نیازی بهش دارن و بهش مراجعه می کنه دلیل روشنی هم نداره مثلا در باب اجماع دیدیم پیغمبر اکرم نفهم اگر علما بر یک مطلبی اجماع کردن با الله از این در جایی که من به خدا گفت نگوسه باشه من ندارم چیزی نداری لكن این واقعیت در فقه اسلامی اتفاق افتاد تو فقه اتفاق افتاد و افتادن دنبال لا تلاش هم امتی علال سعی چیزی برایش پیدا بکنی بعد بردهای یک بچی درش پید یا مثلا در فلحه شیعه چیزی امام نفهموندن که اگر فوقها چیزی گفتن حجده چون من توی امام هستن و که این چون اتفاق افتاد از که مثلا تو بردار از اول قرنه چهارم این اتفاق افتاد علما آمدن در کلامی توجیه کلامی برش کردن که خب اگر فوقها اتفاق کردن این کاش از قول امام این توجیه یک مطلبه اصل وجوده درین عبد الله بن مسعود چیزی به ذهنش رسیده بود که ما را مسلمون حسن و الله حفظه خوب عبدالله عبد الله بن مسعود عادی است دقیقاً عرض کرده عبد الله مسعود مسعود جزء چهره‌هایی از اصحابه که اگر از اسلام حرفش کنیم خودش خیلی شخصیت علمی یا اجتماعی نظره یه شوفان عادی بوده خیلی زود ایمان میاد تا هم وقت کم ایمان میاره آدم خوب مخلص خیلی بازغزار میشه رسول الله میگن اینقدر داخل منزل میگن که آنها خیلی اینجوز اهل بیدن خب مادرش هم به سا اردود پی خدمت پیه همه میامد میرن این نه این که مثلا حالا خودی که از مثلا دانشمندان حجاز بوده و مسلمان شدید خب این یه مارعه آل مسلمون هستن هم تصورات تطورات خودش یک عرضیابی که ما موقع از مطالب بکنیم این رو دقت بکنی خیلی بیش از اون اندازش پس مسع ابو ابو انسان مجبور بود بيو في محله خودش في يمن آمده نه هر كه شاد بین ها و به و سیاست و تایید معاوی و پول معاوی و در دنبالش و مسائل رو درست بکنه من امروز نگاه کردم می گی هر دیدم راجویی که اسمش چی هست این ابو ای اسمش چی 39 قول در اسمی این اصلا دیگه که می خیلی باید تصور موضوع کافیه اصلا برای چی تصور بکنی سی و نه بول در کتب سنی ها در کتب حانبه راجب اسمی نقل شده این دیگه اصلا تصدیق اون تصور خودش کافیه یعنی یک آدم یه سنسر دیگه یه آدم چیش معلومی این یک رفعه شده حامل مثل سنت رسونده خب واقعا یک حسابی میخواد. این مسئله ولایت و رسایت که جدا شدن واقعا یک جهنم در را میدهد اینا این رو اولنه یک جهنم درهی عجیب خریبی شده ازایی چهتماکان به نظر ما میاد که اینا دنبال بحث بجه خبر افتاده که همون که دیروز از چند روز از میکنم که از کلمات ابنه هست و اون چیزی رو که خیلی هم واضح نبود آمدن یک کارش بکنی که لذا کار رو حتی به اینجا رسوندم که ابن حزم میگه اگه حدیث صحیح باشه صرته عدل و عدل الله این داخل در اندان نه نظر نز ذکر نال اول مثلا حدیث صحیح رو مثلاق آیه میذاره تفسیر میکنه آن کار به کجا رسید اگه اگر و عدل عن, عن نبی بکنه این مثلاق اندان نه نظر نز ذکر نال لهول حافظ به علاوه از کریمه آیه خو میفرمایند به خطر طریقیت این تفکرات ما و ایشانه ما وقتیه اون همینه اما این در تاریخ اسلام نیست اشتباه نشه در تاریخ اسلام چون دیگه جستدایا یعنی عاقولی شده که احتمال میدن که به آدم عاقلی بیاد نظر بزنه که خبری که حدونن حدونن انو نبی این مساق ایمان از نظر ذکر این ذکره و ان لا حول و به ذهن عاقلی قطعاً کسی خطور نمیکرد بزنه شما هم شاید خطور نمیکرده کسی یه حرف اینطور طور بزنه لیکن این معناش همون نقطه است که هست کردن از با بیچارگی و استرا کار رو به اینجا ها الان اما این که اماکان علا تقدیر این که این اقوال و محتملات به اصلاح واضح نشه و به حد ظهور نرسه و دلیل بر این که به حد ظهور نرسیده اختلاف بزرگان اسلامه این خودش بهترین دهی اگر حد ظهور بود که چین اختلافی نمیشد این بهترین ریل فلزا اگر شما بخوایید بایی که تمثل کنیم، نهایت امر بزنه ظهور نیست چون محیار در ظهور تفریم متفهم الان توضیح از کردن اگر تفریم متفهم نشد به مجرد این که مراد متکلمگینه این کافی نیست ما در بحث حجز ظهور از کنیم دو مبنای اساسی هست یک ما به دنبال و متفهم هستیم و انعقاد ظهور دو ما به دنبال کش و مراد متکلم هستیم اصلا در باب وجد زود دنبال کش و مراد نیستیم اون که در ذهن متکلم چه صحبتی کرده و قصد واقعی ما این میگیم اگه گفت آب بیار میگیم قصدش این بوده آب یعنی این بیار نمیگه ولی تو قلبش ممکنه از آب چیز دیگه اراده کرده اون به درد کارمان نمیخوره ما, نمیخور. ما به دنبال اون کار نیستیم ما به دنبال تفهیم و تفهم هستیم این اد ظهور میاره در تفهیم و تفهمه و قدر متقا آ بارکه ااد ظهور نداره همه اقوال نمی شده اون اقرااقات نمیشه. اون هم یک عدده ای که از بزرگان متکده میدنیم یعنی از افراد عادی نیستن اقللیگرران هستن از این طرف از اون طرف بزرگان خود ما مثل محومشه سید سر مزداگرن یعنی افراد عادی نیستن در یک سطح بالا و آخر هم با یک به ایسا حالتی مثل تعبدگونه درست کردن و الله ظهوری برای کلام نتبله شاید کلام اشعاری داشته باشه که اگر در خبر فاصل تویان هم در خبر عادل نباشه، اشعاری داره و این اشعار باید به حد ظهور برسیم و تا به حد ظهور نرسیم و اگر مراد زن باشه که زن پیدا میکنیم، احتمال داره چرا خوب زن پیدا کنیم که از آقای و جلقه خبر عرض درمیان این زن از باب زن مطلق حجته نه از واقع زهورات باشه اینجوری باشه این همه اشکال کردن تو اصل عدم فناوض با تنش ما اشکال کردن نه نیست نهاری کنم بلیه بلیه, بلیه. که لازم نیست که یه اشکال کردن دیگران اینجا زهور آخه استدلال اونجا نهزنه اگر, نهزنه اگر نهزنه کسی اشکال بکنه مثل اشکال به اصل وجوده مثل, مثل صوفستایی باشه, باشه اونجا اشکال چون اینجا چون معیار همینه خب باشه نه نه ما خیلی روشن باید دهور و یعنی عرف بفهمه به ما گفته اگر عقل مطلبی رو گفت شما متعبیلیم قبول رو یه ابن ابنه هست یا خیلی تعمال حرفای و قریبی ده ابن هست من از آیه نیم میفهمه اون که حرفایی بگه نه نه نه نه در ذکر درست میکنه بازم از آیه نیم درمه میاره این در ظهور میاد نیست؟ باشه در ظهور میار در ظهور هست و این آیه نیست باشه من بیتران نیم باشه ولی بر اساس این شما نیمیتونید اشکار کنید چون تفهیم تف تا آمد گفت که احتمالات یکتمل یکتمل یکتمل بزرگه یکتمل پس اون زور منعقد نشد چرا ما اگر مراجعون رجوع به زن خیلی خوبه که میخوایم به زن مراجعون از اول صاف بگیم خب باو بس و باور میکنیم همه محققان میگن تمام شاید به زن میگین چون آن بسیار از ما اساس بگیم به زن. از اول گفتیم هدف ما از اثبات وجودی این اصل در مقابل زن مطلق اقامه دلیلی بکنیم. و اگر تا چنین به مطلق این بحث رو بخواید که راه راحت میگیم زن مقدم حجت. اون بحث واجدی میگویند. از روز اول این رو من عرض کردم چون تعجبی چون اولی نه ننوشتن. ما از روز اول نکتر رو عرض کردیم که ما میخریم به حجیت مطلق زن در نگردیم. اگر میگیم به حجیت مطلق زن در نیست بحث نمیخواید مثل به سمعه قم، یا تمام شریعت بر زن خودتون رو نکنید. بگیم دو بال زن یه در بحث آیه نبه میخواد نه مفهوم میخواد نه منطوق میخواد تمام این ادله زن آوره و شما برگیریم بزن. زن وقت این با زواهر قرآن بیانه بیانات این همه آیات قرآن به لسان عربی مبین این همه روایات که نحی شدیل از رجوعه بزن شده این نشون میده که ما در شریعت مقدسه به زن بر نگردیم تمام بحث ما اینه اگر بنابرای بشید اشتر از مقدسه به زن برگردیم که کار رو حفظ کنیم که شما ببینید یه کبرا در باب زهورات این اعواد زهور میخواید یا نمیخواهید یا نه کلام مجمل هم بهش تمسطک میکنیم برای حجیه این شما تصویل بفردیم اگر میگی نه ما این اعواد زهور به کلام مجمل تمسطک نمیخواید آیا مواردی مجمل یا ظاهره؟ اگر ظاهر این هم بزرگ و خالفتش چیه پس میشه احتمالی پرش میشه زن آبا خب بگره این روزی بزن اون روزی از روزی نازم موجود فارس که نفهمه اون که حجیه حجیه داره فارس در روزی لغت که از بحث خارج لغت چیه فارس که اصلا بحث لغت نیست تو مثلا عربی دادی مثلا, مثلا لغت بلدن؟ اون که بحث لغت نیست ما مخاطب اون یعنی کتیع اهل و زبان ها همین دیگه م... هم... الان کسانی که در آیه صحبت کردن همشون عربی صحبت میکنن فارسی دارن اصلا عربی نیست این دیگه شما ما از آیه بفهمیم که خبر عادل حجر سر بوده اون میگه مثلا نمیدونم مشکل <تصفح> اون این محکوم نه اون دیگه مشکل علمی هست که خب چرا خب؟ بحث علمی باید برگرده به ظهور یعنی کادی باید برگرده به ظهور بحث علمی ما توضیح دادیم بحثه اصولی اساسا در این اساس بود که عرف رو بگیرن و تنقیه بکنن خب آن پس نفسیم چرا؟ این بابا این همه علمای اسلام که عرب بودن چون خاص بود که مرزون اصلا به فارسی گرایی در عمقش بالاش ظاهر می‌دَم و رونق عاشقش می‌کنه و ظاهره که با دقت اصلی ما سلاش به دید باشه اینو به خلاف ظاهر احتمال میده خب اگه احتمال هر میشه خب از این که عدد سنگینی از علما و بزرگان هم یکی دو نیستن این میگن این آیه مبارکه رو ما به دست huruf بدیم این ازش میفهمیم در خبر فاسر تبیین کنیم اما نسبت به آدم ساکت فوقش مثلا میگن به خبر فاسر آدم اشعار داره اما انعقاد ظهور که شارع ما رو تعبس کرده این تفصیل رو این درشه نه مطلب اونقدر درقصویی دقت نمیذان منشأ رو میان بیان میکنن دقت نمیكنا میان منشع رو بیان میکنن ما اگر در, در بحث ظهورات همین در بحث مفهوم خب همین چندوز پیچه مثلا منشع این که انعقاد زهور بشه برای جمله شرطیه، اون هیئت ترکیبی ناقص ما بحث لغوی کردیم رفتیم بحث ار... اول بحث لغوی کردیم که آیا هیئت ترکیبی ناقص کارش اثبات واسطه یا قضیه سنایی است این که به باحت مفعومان تو این زیر بنا بود یعنی وقتی گفت به انسان عالم یعنی به انسان مراجعه کن با این حالت که حالت این داشته باشه یا نه انسان عالم در نظر گرفته گفته به این مراجعه کن این بحث عرفی بود بحث ظهور عرفی بود اصولا مباحث ظهورات در به اصطلاح مباحث اصول زیر بناش لغوی در بعضی ها ادعا میشه که این زیربنای لغوی وقتی میخواد زیربنای قانونی پیدا بکنه چی پیدا میکنه. یعنی در بعضی جاه ادعا میشه که ممکن است زیربنای لغویش این باشه، اما زیربنای قانونیش فرق میکنه. این هست چرا؟ اونجا هم دید در روشن است، پس ما اساس رو از لغت شروع میکنیم. و حتی خب میدونه دونیم هم پس مثلا سید مرزمان میگه افعل در روحیه نیم که تو لغت وجود نداری. این شرعه استبات... چیز قانونی است با باید قانونی بیان قانون هم که آمده چون مولا به میگه چون اونجا نقطه مولویت هست چون نقطه مولویت هست شما اصقاط لغت نمتونی بکن بحث, بحث لغوی با در نظر گرفتن روح قانونی ما تو بحث لازرر اینشالله مظهر میگیم بخش دیگه هم گفتیم بگیم. یه دفعه این که کلمه لازرر مناشیه در لغت برای نفع ما نفیه جنسه با قولا معنای اون چیه؟ خبرش چیه؟ خبر میخواد؟ خبر نمیخواد؟ به چه نحوی عقص شده؟ یه بگیم این لازره در عرف پانونگذار چی معنا میده؟ با قول مرموی نایین لازره اگر از بشرع و مقنن سادر بشه چی معنا داره؟ این لازره اون معنای لغویش محفوظه اینجا معنای لغوی های مبارکه محفوظه حالا بعد از این مقدماتی که از خدیم برگرد از خدیم معیار در مفهوم اون سلاسی بودن یا, و یا در شفت و یا در سفر و به تعبیر این تعبیر بنده به تعبیر آیون یک موضوع میخواد یک قید میخواد و اول آقایون ما قلقه علی اونی که واسطه به تعبیر بنده مثلا اگه وقت اکرم اینجا که اکر زیدون فا اکرم ها موضوع اون ها اون زمیره که به زید برمیگرد ببینید خوک وجوب اکرام موضوع هم زیده این که لغویست این بحث غیر لغوی نیست اون وقت این حالت آمدن این واسطه هست آمده گفته این حک وقتی به این موضوع مترتب میشه بار میشه که اون قید بیاد یعنی آمدن اگر قید نیامد این حکم نیست این حکم برداشته میشه این معنی محبوم این عرفی هم هست لغوی هم هست در عرف عام هم هست و در لغت هم هست در یعنی عرف عام مراد هم لغت چیزی نداریم بیرسیم و در قانون هم میاد شکل قانونی خودش رو پیدا میکنه. این توضیح روشن شد این آیه مبارکه را دیدیم آیه سه جور معنا کردن سه احتمال دادن یکی این که ولی یه موضوع میخوایی یه قید یا واسطه به تعبیر مثلا موضوع چیه یک احتمالشون دادن موضوع نبع باشه. قیدش چیه؟ مجی الفاسق به پس خبر با قید مجی الفاسق به یو تبعیم خب طبیعه اگه این قید نباشه مجی الفاسق نباشه لا یو تبعیم اگر ما آیه رو اینجور اینی که شما لغت ما اینجور معنا بکنیم اینجا اکن فاسقون به نبعه این اگر بخوایم شکل به اصطلاح رسم میدش بدیم و بگیم در عرض معنا بکنی بگیم اینجا اینجوریه یک حکم هست تبیین وجود و یک موضوع هست نبع نبع موضوعه یک قید هست واسط من به واسطه میکنم آی معلق علی میگه، حالا قید میگن یک قید هست واسط مجیء به اینطور میگم انا اگه اینجور معنا کردیم بله مفهوم کردیم دو اینجور معنا بکنیم موضوع جایی به نبه این موضوع جایی به نبه امکان فاسقن یا تبین این تبین خورده به جایی به نبه اگر فاسق باشه پس غیر فاسق بودن موضوع جایی به نبه وقت در نتیجه این نتیجه گیری میکنیم که اگر جایی به نب... فاسق نباشه تبیان و حفظ مرزه چه می آقا خب اینجا هم مخموم داره روشن نیست خیلی خب داره. سوم این که بگیم نه مراد این باشه فاسق اگر خبر آورد خب این تبیان داره خبر فاسق خب اگه نه آوردی خبر این نیست فاسق خبر نه چیزی نیست. پس موضوع رو فاسق بگیریم قید رو خبر آورد دیگه جایی مخموم این هم برد خودشون استظهار این معنا رو کردن استظهار این, این معنی روشن شد پس نکته فنی در حقیقت در این آیه مبارکه برمیگرده به استظهار و این طبیعی زنی یک مقدار این ما باید قبول بکنیم که الفاظ و اصولاً چه در محتوای تصوری مستوی تصوری و چه در مستوای تصدیحی ابهام دارن از تمام تامن نال و نبول و کلمه ولناهم این هز حاوی آن ان این نه آیه لینزل اول و اوسط آفیشه و کلمه خودش این قابلیت رو داره. شما این بعضی از افرادی که خودشون کتاب خودشون شرح داره، خودش یه چیزی نوشته؟ هرکس که میتونه بگه نه یا یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه وقت در عبارت خودش دو تا احتمال میده و یه خیلی که مراد من این باشه و خودش داشته یه این چرا؟ چون روز این قابلیت رو داره یا در این یه چیز که دارم برزید این سرو باشه خودش عبارت خودش مخان چرزه خودش بازه اضای احتمال میکنه خودش شاره در عبارت خود ماتن ماتن و شاره هدیش علایه هاله لفظ این قابلیت رو داره این هست. در مبلو تصوری همینطور طور که راهن که کردم لفظ آب این را واضحه مصادر داره این طبیعت لفظ لفظ یک طبیعت سیال داره یعنی که الان یک قضیه در اسم منکر ظهور یک مقدار ریش هاش در اینجاست این معناش انکار ظهور نیست این معناش همون که ما عرض کردیم اون مقدار واضحه به یک قسمت های مثلا خاکستری داره مدلول تصوری و ذاتی همیشه قسمت های خاکستری داره. این هست این طبیعت لفت ناسه این جاکم پاسه همون به مخصوصا که از کلیم شرارن که گاهی آیات مبارکی و مبارک قرآن یک حکمت الهی به این صورت. حالا روی جهت شاده یک تلصفه خاصه خودشان داشته داشت این طبیعت این آیه این اینجوریه لذا حالا ما اگر بخواهیم آیه رو تخصیل تخصیل بکنیم طبق این تصوراتی مقدمانی گفتیم یک اولا به ذهن ما میاد که این ماجی نکته ای نداشته باشه، اینکه آیا کوی موزو ال جایی به جا, فاصل. جا داره ال جایی به بندا، اینجا آیا کوی فاسر، بهش خبر فاسر میخواد بیاره، میخواد نیرو، میخواد بیاد کی میخواد و ولی زاغی دقت کن، اول ما کم رو بردشین، اینجا کم داره کو، کم شد، داشتن از ال جا ای بندا، زیرا من اون جایش هم باید بره، این نکته سر جای نیست، مثل اینجا اگه زیدون فاخره مهندی نیست. به ماجی من در اینجا یک اول بحث این چون آرکوی این بحث نکرد اگر ما ماجی رو بگیم نکته خاصی نداره به ذهن ما میاد که مدلول آیونواره که این خبر و فاسقیت اصلا که اش بحث شرک نیست بحث حالت نیست که ایشون سه تا احتمال دادن ما به ذهن میاد که مدلول آیونواره که اینطوری این فرید خبر و فاسقیت بیانم که پیشش, پیشش که همون علمش, علمش, علمش علم که خبر نمیگن که همین این جای احت نباه. حالا پس یک آقای خبری گفت پیش ما در ما خبردار. شده. لازم هست به این کاپی نیست باید مجیب یعنی فاسق خبری رو داد حالا یا نوشت یا نقل کرد یا گفت و ما شنیدیم. این جا عکم لازمیه که او بیاره پیش ما اینا چون تو ذهنشون بوده قصه بلد مستلق و اون قصه اون شخص و اینها به ذهن من میاد آیه مبارکه ناظر بینه بی که خبر غیر از کثایر احتمالی که آیه خوبی دادن خبر الفاسق یا تبع جناع درسته خبر, خبر الفاسق ولذا این این به این تعبیری که آیین دارد تأبیر من اینطوری بود نتیجه اینه که این در حقیقت در اینجا بیان شرطیت داره بیان موضوع به عبارت مقرآن یعنی به عبارت این اوزد. به مجرد ابداع احتمالاتی که مرمومه استاد فرمدن کافی نیست سر این احتمالات اینه که مساق آیه چیه مساق آیه اینه که اقسام خبر رو بخواد بیان بکنه مساق آیه این است که به لحاظ مخبر میاد میگه این مخبر جایب الخبر چه حالاتی داره آه. یا مساق آیه این است که فاسق این خصوصیت رو داره که در خبر اون تبیین بشه و این نکته هم یک نقطه اونقلاقی باشه چون از کردیم آیان اصل مطلب رو چه قدیمی و چه حدیثا تعبد گرفتن ببین تعبدی در کار نیست سر این که ظاهرین را تعبد گیرسن فاسق رو به معنای مثلا کبیره گیرسن. ما از کردیم شواهد قرآنی فراوان است که فاسق مراد است که ایمان به خدا ندارند از کردیم در وقت مشکل در مخاطبین قرآن چون ایمان به خدا ما الله محره بود. بحث آلهه بود. یعنی ایمان به الله که محره ما به قوم من قبل نام قوم فاسقین. از در برقیم نوه من چند بار کردم بعضی از الفاظی که الان پیش ما در یک محدوده ای به کار میشه در قرآن اون محدوده رو نداره مثلا توبه معنی رجوع توبه و عادتاً آیات مثلا قائل هستن یکی از احکام به شریعت اینه که اگر انسان گناه کبیره ای کرد توبه بکنه چون اگه توبه نکنه ممکن اصلا دینش از بین بره ایمانش از بین بره حتی توبه نمیخواد اما کمال تو اصطلاح توبه اینه پیش شما. اما گاهی در خود و قرآن توبه نه اصل ایمان بله یا یا نه توبه الالله این توبه الالله اصل ایمانه فسخ هم همینطوره فسخ گاهی در مقابل است که عمل و انجام مؤمن هست لکن عمل حرامی را انجام میده گاهی در مقابل است که اصولا به خدا ایمان نداره. اما من که اخه من کان مؤمنم که من کان فاسرم لا يستو درباره قوم فرعون داره که فاستریکان و فاسبین در آیات مبارکه من تصادیم دیشب باز نگاه کردم 54 مورد دارن اگر اشتباه نکرده باشم شماره نکرده کرده باشه مجموعه اشتباهاتش هست و آیات مکی و مدنی هر دو داره البته مکی و مدنی من موخذه از همین کتاب موزنفرغث خواستم ماده فادر و باقی محمد فاضل از باقی که این دقیق نیست یالا من به نقل میخوام بگم چه اشکال نکنه که این مثلا مستر درست نیست راسته این مستر خب لقابل اعتماد نیست اکتفا به همون مشهورات کرده و که من فعلا به همون کتاب البته آیات مدنیش بیشتر تا مکیش چهار درست مکی بود تقریه نوشته شرط هاش مثلا مدنی بود آیات مدنیش در استعمالاتی اما اله ماشاءالله استعمال فیض راجعه به کسانی شده که در مذهب همون ولیده نهاتنم که اصلا علامه حسب درش منظور کنه شرایط ابوالعباس ابن عثمان قبول نمکنه آیه مبارکه اینجا اكو فاسقون به نظر نمیخوره درام برای اینکه مثلا عبان ابن عثمان مثلا فتحیسی یا واففی است ببین با اینکه در اختلاف در مذهبه ازش تعبیر به فسق کرده پس به ذهن ما این است که آیه مبارکه اصلا ناظر به این نکته فاسقه که در فاسق در خبرش تعامل میشه توقف میشه این نگاه هم نکنیم بگیم این یک فاصله که دروغ نمیگه خدا میگه این مادام که از حد به اصطلاح اطاعت خدا خارج شد در بعضی از جهات ممکنه در این صحبت که میگم که از حد اطاعت خدا خارج شد ممکنه خدا نمیگه ردش برداشتش میکنم دست نگار بذارید و به ذهن ما میاد که اون راهی رو که مرحوم استاد رفتن درست احتمالاتی شد اما راه فنیش اینه این آیه مساو یک مجی که مطلوب و ادات شرطه این خصوصیت داره یا نداره به نظر ما نداره مفاد نهایی آیه مورکم اینه که خبر و فاسق یا تو هم و اینم مخلوم نداره این مثل قبل مخلوم رو یکی از خصوصات فاسق اینه که در خبرش تبیان میشه بله اشعاری چا داشته باشه که خبر عادل اینطور نیست اشعاری داره اما در حد ظهور نیست و اصولا تعبدی نیست در امرو اغلاییست حالا شواهد ما چون وقتا تموم شده سریعا بگم در فضای تتیمی بحثش بکنیم شواهد ما یک خود بساله خبر در سیده اغلا یک است که طریقیت صرف داره در فهم اغلایی در چیزی که طریقیت صرف داره طبیعتا اینچور نیست که بیان به شما تعبد درست بکنن کاری که میکنن میگن ببینی این درست یا درست نیست مثلا یک اکسی رو به شما نشون از یک شخصی که مثلا کار زشتی مثلا میده. به شما نمیگن بیا تعبد به این اکس بیدا کن اکس کاری نمی کنه تاری رو نشون میده به شما راهی نده چیزی نیست که به شما چی میگن میگن بررسی عکس اکس درسته اکس ساختگی نیست جلی نیست بس پشه این دیگه تعبد به اکس یک امر غیر و است. این یک این موضوعی که اینجا محل حکم قرار گرفته یک چیز اغلاییست اون طریقیت داره در طریقیت رسم نیست بیا شما رو تحبت بذاریم دو یعنی. گفت بینو گفت چه کار مثلا تبیانش چیه نگاه کنیم فتاهایی مثلا شیعه چیه فتاهایی عالمون نه گفت این چرا شعاله گفت بینو یعنی؟ تبیان این یعنی چیه دنبال بیان داریم بیان این چیه یعنی برگریم به تروق او عالی بینی خبر مطلوب هستن خود تبعیه تا چه میگم آن ترس تصور نفرمونه خود تبعیه یعنی آن روح عالی محدودش نکرد شود چیزی تبعیه نمیگه اگر تعبود بطور بود تبعیه نمحدود میگه و دیگه عزیز روح تبعیه چرا فهمیدم فت تبعیه یعنی نمیگم که فت یعنی دنبال شواهدی شواهدی که بگن نکرد یعنی کی نوح عالی وقتی شواهد بیان نشه بیان نصد دقیقه سه بام فرمود انتوسی بود و من به جهالتیم فسوس تعلیل، من چند بار از کردم ظاهر تعلیل اغلاییت نه تعبود از کردیم مثل مرموسیقی از از اون عمقه علمای خم چند تا رو اسم بودی اینا کتاب های نام علل و شرایط که انما تعلیل رو هم با از شریعت بگیرن و این روشن نیست از که من نایمی و شاگزه ایشون اگه نگاه بکنی در بحث استثها که بلا سموزه یقینه بشن میگن امام تعلیل کرده به ایک انرو اغلایی اصل تعلیل اغلاییت راستان هم هست انصافم تعلیل معنیش اغلاییت معنی که تعلیل هم تعبدی باشه این که معنی داره که و این مثلا هم اما خدا می کنمانید که خبر یه که شنش طریقیته ممکنه این تعلیق چون فاصله اینطوری درست نباشه اگر درست نشود شما بعد یک و از اون پیدا میشه که قابل تدارک نیست پس از اول بررسی بکنید این مفاده آیه من نه که آیه هیچ تعبدی رو نه در می می‌گذاره نه در هیچ ذره تعبدی توش نمی‌بینید یک چیز خاصی خدا بله یک چیز خاص همون منطوق آیه است و اون چیز خاصی که خدا کسی شد مطی خدا نشده در شراب خوردن تو خبرش هم دست نگهده. این ولی بله این تعبد تعبد نیست این هم اشاره به همون ارتکاز اوعلار است این تازهی داشت. این هم مثل باعث و لتم لوط نفر ل کسس و کارمل اخلاق این جزه تطمیمات راست این کار رو ببر کردن باز هم نریش رو بیان کردن نریش اینه که این انسان چون فاصله ممکنه تو این خبرات رو از کتره ممکن است این خبر رو وقصه. بخش شما پشیمانی پیدایم که راهی هم نذارید. پس برسی بکنه. این مفاده من از این مفاده هایی مفاده که هیچ نهر تعبدی به ذهنم نمیاد اولا یک به ذهن ما در احوالات فاصله و برپردن اگر خبر باشه این خبر فاسق نکتش نکته فاصله و مجی نکتهی نداره شرف در اینجا مسئول برای بیان موضوع و خود موضوع مطلب و به اصطلاح تبیین و بر همه شواهد اوغلایی هستند و نشون میده این حکم این نوع ارشاد به احکام اوغلایی است یک تعبود خاصی در ناحیه منطوق نیست کالا وقتی در ناحیه مفهوم قالب تعبود بشیم ارجاع دادن شارع مقدس به یک نظریه فقط ممکن بود که افراد قلقلک بکنن میگن این آقا آدم راسخویی میگن درسته اما فقط یک کشوری که سابقه 200 سال فلسفه در شما داره ممکنه در این خبر داره به شما دروغ میگه این ممکن که از بررسی بکنه اما یک کشهایی که سابقه استعمالی با شما نداره خود این من با مثال نمیگه مثلا. این نقطه یک ای نقطه, نقطه اغلاییست و نقطه خاصی در رعایه مبارکه که بیمون شاره از اون نقطه خارج شده وجود نداره رسال الله علیه